شنبه 23 جولای 2013 صبح بدون اینکه به ساعت نگاه کنم میدونم که باید بین 7.45 و تا 8 و, پنج هشت و رب باشه از رو وضعیت نور اینو میدونم از رو صده های توی خیابون پشت پنجرم از صدای جاروبرقی کتی توی حال درست پشت در اتاقم کتی هر شنبه زودتر از خواب بیدار میشه و خونه رو تمیز میکنه حالا هرچی میخواد باشه ممکنه تولدش باشه شروع شروعشهعرف الهام بخش صبح باشه. میگه این کار آدمو سباک میکنه برای یه هفته خوب آمادهت میکنه و چون خونه رو همراه با ورزش هوازی حوازی آیروبیک تمیز میکنه دیگه حتی نیازی نداره بره ورزشگاه این موضوع واقعا آزارم میده. جارو کشی صبح زود. خب به حالال بخوابم حتی صبحام نمیتونم بخوابم نمیتونم با آرامش را وسط های روز چرت بزنم من یه از خواب میپرم نفسم بند میاد و قلبم میکوبه دهنم هم میشه سری میفهمم قضیه چیه من بیدارم هرچی بیشتر میخوام بیتوجه باشم کمتر میتونم حیه هوی زندگی و نور به اجازه نمیده بیتوجه باشم دراز میکشم به صدای سمجگ کتی رو انداخته گوش میکنم به کار فرح بخشش و به لباسای کنار خطا و بوسه جس به عاشقش توی صبح آفتاب روز جلای روم کش میاد بدون اینکه که یه دقیقش پر بشه میتونم برم فروشگاه قبلی توی براد میتونم گوشت آهو و گوشت نمک زده ایتالیایی بگیرم و روزم و به آشپزی بگذرونم میتونم با یه فنجون چای روی مبل بشینم و برنامه آشپزی شنبه رو از تلویزیون نگاه کنم میتونم برم ورزشگاه میتونم رزومه بنویسم میتونم منتظر باشم تا کتی از خونه بره بیرون بزنم زیر قولم و دو تا بطری ساویگ نین بخرم. توی زندگی سابقم هم صبح زود بیدار می شدم. با صدای تلق تلقه قطار ساعت هشت و دقیقه. قشمامو باز می کردم و به بارونی که به پشت شیشه می خورد گوش می کردم. باشه سرم حسش می کردم. قرق خواب، گرم، سفت. بعد اون میرفت سراغ روزنامه و من نیم رو درست می کردم. می توی آشپس و چای می خوردیم. بعد برای نهار می رفتیم بار خوابمون میگیره جلوی تلویزیون به هم میپیچیدیم تصور میکنم اوضاع حالا دیگه برش متفاوته نه اینکه اون توی بعضی کارا مثل نیم رو درست کردن تنبل باشه ولی بهجاش لذت متفاوتی داره. یه دختر کوچولو وسط اونو همسرش جا خوش کرده و یه سر ونگ ونگ می حالا دیگه بعد بتونه حرف بزنه همش دا ده و مامانو. <تصور> با یه زبون سری غیر قابل فهم برای همه جز والدینش این درد خیلی سنگینه. خیلی سخته. درست میشینه وسط سینم. نمیتونم صبر کنم تا کتی از خونه بره بیرون. عصر میخوام برم جیسونو ببینم. تمام روزا توی تخت منتظر بیرون رفتن کتی بودم تا اینکه بتونم یه چیزی بنوشم. بیرون نرفت. از اتاق نشیمن تکون نخورد. به زور یه ذره ترک احتیاط کردم. کل بعد ازور نمیتونستم اینجوری خودم رو بستری کنم، برای همین بهش گفتم برای پیاده روی میرم بیرون. رفتم به ویچیف، اسم مستأره بار بزرگ درست توی خیابون اصلی. اونجا سه جام بزرگ شراب سرکشیدم. دو جرعه جک دانیل خوردم. بعدش رفتم ایسکا. دو تا قوتی جین و سودا خریدم و رفتم سمت قطار. میخوام برم جیسون رو ببینم. نمیخوام باش دیدار کنم. نمیخوام برم پشت در خونش رو در بزنم. ابدا همچین کاری نمیخوام بکنم. دیوونه بازیه. فقط میخوام از جلوی در خونش رد بشم. با قطار یه دوری بزنم. من هیچ کار دیگه ای نمی کنم و فکر نمی کنم دلمم بخواد برم خونه. فقط می خوام ببینمش. می خوام اونا رو ببینم. این ایده خوبی نیست. میدونم که خوب نیست. اما چه ضرری می داشته باشه؟ میرم رم و یه دوری میزنم و برمیگردم. من قطارارو رو دوست دارم. این, این چه اشکالی داره؟ قطرها معرکن. قبلا وقتی من هنوز خودم بودم، از رویا کمک می گرفتم تا با تام سوار قطار به یه سفر رمانتیک بریم. مثل خط برگن برای پنجمین سالگرد ازدواجمون یا قطار آبی به مناسبت 40 سالگیش. با سماجد حالا داریم ازشون رد میشیم. نور زیاده و من نمیتونم خوب ببینم. وقتی به خاطر نور چشم تینگ میشه بینایی دو برابر میشه چه بهتر؟ یعنی هستن؟ اون هست روی تراستن نیستن اون جیسونه جسه میخوام برم نزدیکتر نمیتونم ببینم میخوام به اونا نزدیکتر بشم نمیخوام برم یستان نمیخوام توی ویتنی باشم نباید توی ویتنی پیادهشم خیلی خطرناکه اگه تامانا من ببینن چی میخوام توی ویتنی پیادهشم فکر خوبی نیست فکر خیلی بدیه مردی روبرون نشسته با موای بلوند، همرنگ ماسه، فرقشو خوب کچ کرده، به هم لبخند میزنه. میخوام یه چیزی بهش بگم اما کلمه ها قبل از اینکه به دهنم برسن محو و بخار میشن. میتونم مزهشون کنم اما نمیتونم بگم شیرینن یا ترش. داره به هم لبخند میزنه یا نیشخند؟ معلوم نیست. یک شنبه 14 جولای 2013 صبح قلبم تاری میزنه انگار توی گلومه. ناجور و بلند. دهنم خشکه نمیتونم آب به دهنم بدم. میزنم رو می به پنجره. پرداها کشیدن اما نور اینجا چشممو اذیت میکنه. دستمو تا تو صورتم میارم بالا که و نوک انگشتام پلکم میمالم که چشم کمتر اذیت بشن. ناخونام کثیفن. یه چیزی درست نیست. برای یه ثانیه احساس میکنم انگار دارم سخوت میکنم انگار انگار تخت از زیرم در رفته. آخر شب یه اتفاقی افتاده. نفسم از توی ریاه هم تندی میاد بالا و فروکش میکنه. خیلی سریع. قلبم میزنه. سرم گیج میره. معطل یه خاطرم که توی ذهنم روشن بشه. بعضی وقتا یه لحظه جرقه میزنه. بعضی وقتا چند ثانیه اینجا جوری چشممه. بعضی وقتا هیچ جوره نمیاد. گویی؟ خاطره یه ذره سرک میکشه انگار اتفاق بدی بوده یه جر و بحثی هست صدا بالا گرفتن مشتا نمیدونم یادم نمیاد من رفتم بار سوار قطار بشم توی ایسکا بودم توی خیابون جاده بل نیم آره رفتم بل نیم رفتم بل نیم برام مثل یه موج میگذره یه ترس سیاه بایی سرک میکشه اینو میدونم نمیتونم مجسمش کنم اما میتونم احساسش کنم تو دهنم میسوزه انگار لپم همو گاز گرفتم مزه تند فلز مثل خون روی زبونمه حالت طبو دارم سرم گیجه دستم و میکنم توی موهام و میکشمش به پوست سرم از درد به خودم میپیچم سمت راست سرم یه برجستگی هست درد و حساس به لمس سرم با خون مسیر شده من سکندری خوردم درسته درسته رو ها توی ایسگای سرم شکسته یادم توی قطار بودم اما بعدش گرداوی از سیاهی بود توهی دارم تونتون نفس میکشم سعی میکنم زربان قلبمو کم کنم وحشت بالا آمده توی سینما فرو بنشونم کن من چیکار کردم رفتم بار رفتم سبار قطار بشم یه مردی اونجا بود آآآ آه... حالا یادم اومد ماش خرمز بود به هم لبخند زد فکر کنم با هم حرف زد اما یادم نمیاد چی گفت چیزهای بیشتر از اینم بود بیشتر از چیزی که توی ذهنم اما, اما اما نمیتونم بهش برسم نمیتونم نمیتونم تو تاریکی پیداش کنم من وحشت زدم اما مطمئن نیستم الکی از چیزی ترسیدم یا نه حتی نمیدونم نمیدونم چیزی برای وحشت وجود داشته یا نه دور تا دور اتاقا نگاه میکنم گوشی تلفنم روی میز کنار تخت نیست کیف دستیم روی زمین نیست روی پشتی سندری که معمولا اون رو میذارم هم می نیست نمیشه گوشیم گم شده باشه چون به هر حال وقتی توی خونم اینه که کلیدامو گم نکردم از... از رخت خواب بیام بیرون لختم خودمو توی آینه قدیه کمود میبینم دستام دارن میلرزن ریملم راف داده روی هامو. لب پاینم بریده شده یه کبودی روی پامه اه... برمیگردم میشینم روی تخت و سرمو میذارم روزانو هم منتظر میشم تو حالت تعبون بهتر بشه بلند میشم لباس خوابم رو چنگ میزنم و در اتاق خواب رو با یه زر باز میکنم خونه ساکته یه جوره مطمئنم که حتی خونه نیست این یعنی که مونده پیش دوست بسرش احساس میکنم انگار بهم گفته هرچن یادم نمیاد که قبل از این که من برم بیرون یا بعدش تا اونجایی که میتونم آروم پا میذارم توی حال میتونم در اتاق خااببی کهتی رو ببینم که بازه به دقت توی اتاقش نگاه میکنم تختش مرتبه ممکنه طبق معمول بیدار شده باشه و مرتبش کرده باشه اما فکر نمی کنم دیشب اینجا مونده باشه آه که این خبر تتسکین دهنده ایه اگه این نیست یعنی اومدن دیشب منو ندیده و نشنیده و معنیه که نمیدونه چقدر اوضام خراب بوده. اهمیتی نداره. اما اهمیت داره چون من یه جورای حس شرمندگی دارم که به نظر نمیاد متناسب با وخامت حالم باشه. یا یعنی اینکه مثلا انگار کسایی شاهد خراب بودن اوزان بودن. بالای پله‌ها دوباره احساس گیجی می‌کنم و نرده‌ها رو محکم می‌گیرم. این یکی از ترس‌های بزرگمه. ترس از اینکه از پله‌ها بیفتم و گردنم بشکنه، همراه با خونریزی شکمی تا وقتی که کبدم از کار بیفته. فکرش دوباره به احساس ضعف میده دلم میخواد دراز بکشم اما باید کیفم رو پیدا کنم باید تلفنم رو چک کنم لغل باید بدونم که کارت های گم نکرده باشم باید بدونم به کی زنگ زدم و کی کیفم افتاده تو حال درست جوره در شلوار جین و لباس های زیرم مچاله کنارش کپه شدن میتونم بوی ادرا رو از پایین پله ها حس کنم و برمیدارم و دنبال گوشیم میگردم سر جاشه خدا رو شکر همرا با یه دست اسکناس 20 دلاری و دستمال کاغذی های خونی دوباره هوام شروع میشه این بار قوی تر نمیتونم زرد وبیره که بر میگرده به گلوم و بالا میاد مزه کنم اما برای استفراغ نمیرم تو همون همون رو روی حال کنار بهله بالا میارم. باید دراز بکشم. اگه دراز نکشم یه قش میکنم و می‌خورم زمین. بعد اونجا رو تمیز کنم بعد بعد بعد بعد بعد, بعد اونجا رو تمیز میکنم طبقه بالا گوشیمو میزنم به شارژ رو روی تخت دراز می‌کشم. دست صبحم همو آیسه میارم بالا و با ترس و لرز وارسی‌شون رو می‌کنم. روی پاهم کبوده، بالای زانوها ممکنه به خاطر تلو, تلو خوردن در اثر مستی باشه یه جور کبودی که انگار وقت قدم زدن خورده باشه به چیزی. کبودی روی بازوهام نگران کننده تره کبودی پررنگ و بیزی شکل مثل رد انگشت به نظر می رسن. این, این لزوم بد نیست قبلا هم اینطوری شده معمولا وقتی که زمین خوردم و یکی به کمک کرده تا بلند بشم شکاف روی سرم بجرور به نظر میاد می تونه به خاطر چیز ضرری مثل خوردن به ماشین موقع سوار شدن باشه شاید موقع اومدن به خونه تاکسی گرفتن با گوشی رو برمیدارم دو دوتا پیغام دارم اولی از کتیه درست بعد از ساعت پنج دریافت شده و ازم پرسیده که کجا موندم اون امشب داره میره پیش دیمین و فردا میبینه منو. امیدواره تنهایی ننوشم دومی از تامه ساعت ده روب دریافت شده وقتی صداشو شنیدم نزدیک بود از ترس گوشی از دستم بیفته فریاد میکشه. خدایا ریچل چه غلطی بکنم با تو من به اندازه کافی از دستت کشیدم درسته درست یه ساعتی که دارم دنبالت میگردم و رانندگی میکنم. تو واقعا آن رو ترسوندی خودت که میدونی، اون فکر میکنه تو خواستی فکر میکنه تو خلاصش اینه که من تونستم جلوشو بگیرم که زنگ نزنه به پلیس مارو تنها بذار دست بردار تو رو خدا هی hey, به من زنگ نزن دست بردار از پلکیدن دور بر ما فقط ما رو تنها بذار من نمیخوام با تو صحبت کنم میفهمی چی میگم من نمیخوام با تو صحبت کنم نمیخوام تو رو ببینم نمیخوام تو هیچ جا نزدیک خونه باشی اگه بخوای میتونی زندگی ما رو خراب کنی ولی نمیتونی منو مال خودت بکنی دیگه نمیتونی نمیتونم بیشتر از این از تو حمایت کنم فهمیدی فقط از ما فاصله بگیر نمیدونم چی کار کردم من چی کار کردم بین ساعت پنج تا ده چه کاری انجام دادم چرا تام دنبالم میگشته با آن را چی کار کردم لافو میکشم رو سرم چشم و محکم ببندم خودم رو در حال رفتن به اون خونه تجسم میکنم تو را پاریکای حد فاصله باغشون با باغ همسایه قدم میزنم از نرده بالا میرم به باز کردن درای کشویی شیشه ای فکر میکنم دزگی میخزم توی آشپزخونه آنان نشسته پشت میز من پشت سرش سبز میشم دستمو توی موهای بلندش حلقه میکنم سرشو سری میکشم عقب میکشمش روی زمینو به شدت میکوبمش روی سرامیکای سرد آبی اصر. یکی داره داد میزنه از رو زاویه نور اتخابم میتونم بگم که خیلی وقت خوابم باید اواخر بعد از ظهر باشه سر شب سرم زخمه خون روی بالشنمه میتونم بشنوم که یکی از سبقه پایین داره داد میزنه باورم نمیشه محض رضای خدا ریچل ریچل من خوابم برده وای خدایا استفراغ توی پله ها رو تمیز نکردم و لباسام توی حاله وای خدایا خدایا خدایا سری شلوار گشاد میکشم پامو یه تیشر تنم میکنم درو که باز میکنم میبینم کتی بیرون سمت راست در وای ساده. به نظر میاد با دیدنم وحشت کرده میگه چه بلایی سرت اومده بعد همون جور که دستش رو به اشاره بالا گرفته میگه واقعا ریچل متاسفم اما فقط هیچی نگو نمیخوام بدونم. نمیتونم همچین چیزی رو توی خونم تحمل کنم. نمیتونم دب... حرفش رو ادامه نمیده اما برمیگرده به حال نگاه میکنه. به سمت پله ها میگم. متاسفم خیلی متاسفم. من واقعا حالم بد بود منظورم اینه که تمیزش میکنم تمیزش میکنم. تو حالت بد نیست. هست؟ تو بازم خورده بودی. خماری. متاسفم ریچل. من نمیتونم اینو تحمل کنم. نمیتونم اینجوری زندگی کنم. تو از اینجا میری. باشه؟ چهار هفته بهت وقت میدم تا یه جای دیگه پیدا کنی. اما باید بعدش بری. بعد پشت میکنم و میرسم تو اتاق خوابش. محض رضای خدا این کسیبگاری رو تمیز کن. بعد در اتاقشو محکم پشت سرش می پنده. بعد از تموم کردن تمیزکاری برمیگردم اتاقم. در اتاق کتی هنوز بسته است اما میتونم خشم سکوتش رو که از اون تو ساته میشه حس کنم. من نمیتونم آرومش کنم. منم اصابانی میشدم اگه میومدم خونه و شلوار خیس شاش و کسافت استفراغ توی پله ها میدیدم. میشینم روی تخت و با تلنگری لبتابم باز میکنم. میرم توی اکانت ایمیلم و یه یادداشت برای مادرم مینویسم. فکر میکنم بلاخره وقتشه. باید ازش کمک بخوام. اگه برم خونه، نمیتونم اینجوری باشم. من باید تغییر کنم. باید بهتر بشم. نمیتونم به کلمه فکر کنم. هرچند نمیتونم به راهی فکر کنم که این این موضوع رو براش توضیح بده. نمیتونم صورتش رو مجسم کنم وقتی که تقاضای کمکم رو میخونه. با ناامیدی رو ترش میکنه. عصبانی... میتونم صدای آه کشیدنش رو بشنوم گوشین بوغ میزنه. یه پیغام دارم. ساعتها قبل دریافت شده. دوباره تامه. نمیخوام چیزی رو که اون باید بهم به بگه بشنوم اما این کار رو میکنم. نمیتونم ردش کنم. ضربان قلبم شدت میگیره. انگار متن پیام صوتی توی سرم ضبط شده. خودمو برای بدترین چیز آماده میکنم. ریچل جواب بده. صداش به اندازه قبل عصبانی نیست و زربان قلبم یک کمی آروم میگیره میخوام مطمئنشم که تو حتما رفته باشی خونه دیشب چند تو چند تا ایسکا بودی؟ یک آه سمیمانه و طولانی ببین متاسفم که دیشب سرت داد زدم این چیزایی یه ذره زرب... خب اصاب خود کنه دیگه من خیلی برات متاسفم ریچل واقعا میگم اما فقط میخواستم بهت بگم دست فرداری. برای بار دوم پیغام باز میکنم به مهربونی صداش گوش میکنم و عشقم میریزه خیلی طول میگشه تا گریم بند بیاد و متن پیامی رو براش بنویسم من خیلی متاسفم الان خونم نمیتونم هیچ چیز دیگه بگم چون نمیدونم دقیقا اون چیزی که من ازش متأسفم چیه نمیدونم با آنها چی کار کردم که اونو وحشت زده کردم در واقع خیلی نگران آنها نیستم نگران اینم که تامو نراحت کردم بعد از همه این چیزا اون سزاوار خوشبختیه من هرگز به خوشبختیش قبطه نمیخورم فقط آرزو میکنم این خوشبختی میتونست با من باشه راست میکشم رو تخت و زیر لحافم میخزم میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده آرزو میکنم بدونم برای چی باید متأسف باشم با بیچارگی سعی میکنم قطعه فراری رو از حافظم پیدا کنم یقین دارم که بحث و جدلی داشتم یا شاهد یه بحث بودم با با آننا بود انگشتان میرن روی زخم سرم بریدگی لبم یه لحظه نزدیک یادم بیاد چی شده انگار انگار یه صدایی می‌پیچه توی ذهنم اما دوباره ازم دور میشه نمیتونم به چنگش بیارم تا میام فکر کنم که تو چنگم گم میشه توی تاریکی درست جایی که دستم بهش نرسسه